الله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله على سيدنا معين که این روایت اجمال هم خوبی بودیم و ما خب باز که بس بحث یک نواخ بشه اینها رو متعبض شدیم هستان که روایتی بود که ما در کتاب قربل اصناب بود از کتاب علی ابن جنفر معلی کردیم دیروز توضیح کردیم که این کتاب علی ابن جنفر دارای موسطقه متعبی دید یک توضیح شنوها تکرار من دیگه او باید مثال تکتران کنم در این که اطالت ارتکازی برای شما پیدا بشه که هر وقت روایت علیه و جعفر رو دیدیم بدونیم مثلا این از کدوم نصف هست در بعض او اجمالا چی جوریه که در کتابی بنامه خود کتاب علیه و جعفر در اختیار سال به بوده این روایت آمده و لکن از کنم احتمالا این کتاب دیگر دیگر که نصفه داشتیم تفاولی داشته باشه چون اونجا داردش نیه که امام نیده کازم السلام این دوباره در از امام صادر به هر حال در اون کتاب علی نوجه که توضیحاتش بذاشت داره این نسخه ایشان نسخه سا بساره مالم یعمر به توی این شاک جهده نگاه کردن مالم یعمر به نمیشه در نسخه درشتی داره ایشان بگیر مالم یعمر به در نسخه به که هم به مسائل علیه بجرد اما چاپ دادی آنها تو نسخه دهار داره مادم یوز مربه به جایی اومربه نقطه نمی احتمال تحلیف زیاده یعنی اونطور میز کارا مثلا تازگیر و در تفاقه گربل اسناد که از مسائل اصحاب در برنسه در اونجا داره که لابست به مالم یعصد احسیان نشه هر صورت که این روایت در مسادر مشهور اصحاب نیامده و رضا در حضور مشغور هم ترسطبش نگردن اصلا اعلام دیگر ها نگه به خاطر اینکه در کتاب تحضیح و کافی استفساد نیامده اون دو کتاب هم خیلی کتاب ها از این که بعدها پیدن فرسطان در اصحاب نه از غرنی آزار دارده در اصحاب اون کتاب عبدالله نجهتر از خیلی متداوت نده بایدش نقل میشده نقلش هست اما خیلی متداوت اونجوری نده از راید که این راجع به خود کتاب من دیووت توضیح نم بپرید که نمیشه نمیشه نمیشه کنم من اون مثلا در این رویه مثل این رویه و در پنی کتاب مثالت این کار انجام دهن معروف مشی از همون قدیم می نهید میشه چون تا آخر نگاه هم نگاهشون می هست خودمون هم چاره‌ای در دست خودشون نشد ایشون فهمیدند که عبدالله بن جعفر در ورثه این سند دقیق به خاطر جهالت عبدالله بن حسن نوه علی بن جعفر بعد که بروا و علی بن جعفر کتابه این سند صحیحه چون ثاریه و وصایای علی بن جعفر صحیحه چون جوز بعضی ها صحابه کنم من اشاریات اجمالی می کنم اگر معلوم بس بسی بس بس باشه باید کتاب بخونیم من هر میکنم معارض روشون چون مراجعه کنم نقطه ای که مرموم اصلاف هم اصلافش در کل کتاب صحیحه ایشون اینجور استضاع یعنی استضاع رو می بندن که مرموم استضاعب سار یک طریقه آم نصحی به روایات شیخ توسی و آثار شیخ توسی برن اجازه خاتمه که در اون شاق 20 میشه در این شاق میشه هیشون اجازاتشون اروزه محسن هم هست به اجازاتشون به شیف توسی برمیه شیف توسی هم به کتاب علیه منجفر فرید صحیح دارن پس حریر مردم صاحب رساله به کتاب علیه منجفر صحیح این استبلال ایشان که همین از این کتاب مثبار شباره با صحیح استبلال ذکر نکرد یعنی استبلال نکته شد نیست نکته اما در درس ازشون زیاد شده که را را در محضرتون تقرار شده به این که رسول از زیاده که حالا خیلی دارد اینکه لازمه این کلام ایند که ایشان مثلا در من یازده هم یا دوازده هم یک کتابی به اسم علی نجفل فیلاد کردن اجازه آم به در و کتاب بخرا رو گذاشیم یه بحثه اینم اجازه آم گذشته اثبات میشه این کتاب خارجی که در اختیارشون بوده مال احمون علی بن اعراب برای مظاهره این اشعار رو برقرار کردن قبول بکنند شروعش این یه وقتیه که عرض کردم عبارات اجازه ایشان در تورم ایشان به کتاب اسها در خاتمه و یه چیزی هم در مقدمه داره هم در مقدمه و, و سال رساله هم در خاطره اما تو در خاطره کافی من هم رو کافی ندرده مرموم سال و سال به خاطر دقتی که مثبتن دارند که کمالن و درست دارن ایشون اجازهشون رو نبشتن اجازه خامنشون ایمون خاطر فوزید بدن اجازه خامنشون رو به کتب اصحاب تراسط شهر خیزی وقت میگن من همین اجازه مثلا شیخ توسی کتاب حسین سعی کرده بود. من کتاب حسین سعی دل دهم اجازه داده نمی‌کنه. در دیگه یک لیست میده کسانی که کتاب‌های اونها در دست نکافی و تحقیق و استرسار و تحقیق آمده، درک می‌کنیم آنها. میگه من که تحقیق از تو شیخ توسی سعیه. اون جاهایی که شیفتوسی از کتاب رو حسین و سعیل نرمی کنه به بود این ترید من میشه به اون کتاب به کتاب رو حسین ترید من به قسمتون بودیم در ج... خاتمه احتمالا مرمو مستاد نگاه هر برمید لذایشون مثلا میگه تریقه من به اه... اه... کتابی رو که فرطیل در اشتیار شیفتوسی بوده اینو میاره کتب مفضال هست، مفضال کسر هست، مفضل سقیل هست، محبوب هست میگه همین طریبی که من دارم این کتب را من به همین طریب نهده میکنم یعنی کتبی که در ها شیط توسی یا پولیزی یا, یا سرور بوده و اونها از اونها نهره کردن من با این طریبه ها نهره کردن بعضی جاها ایشان تصریح میکنه یکی دو مورد تصریح میکنه که غیر از طریق آم من یک نسخه از این کتاب دارم این غیر از طریق آمونه یکی شما این جمع علیه نجبره وقتی اسم علیه نجبر میرس اون طریق آم میگه به آزار غیر کتاب از کتاب علیه نجبر این آید بوش ملاحظه نظر بوده او رویشان میره من جمله کتاب درام نباقه مال احمد این هم درشتی ایشان بوده چون تو درگیر نباقه احمد در محمد نیسا این نسخه کتاب جون نسخه طالب صارل صاحب مستور صارل ده که این کتاب معلوم نیست مال نوادر باشه تا صاحب صارل اعتقاد بشه که این کتاب نوادره این رو جداگانه می‌گیرند اما این چه عثری کتاب داره یک نسخه از نوادر درناو ناقصه این نسخه الحمدلله ها موجوده الان این نسخه الحمدلله موجوده پشتش حملقه صاحب وصایله یعنی این پشت اون نسخه روش نشد زیاده کتاب و نوازه لحمده، لحمده،, لحمده، محمده، نیزه اشعای قومی هاشیش هم این نسخه در کتابانه های در نجف که هم نسخه قوم چاپ ده نه هایی افتایی چاپ همیده همی نسخه همین نسخه در نسخه هم کشون شرک از این نسخه داره خودتا ساده و حساسه با مطالعه اون نسخه ضعف نسخه هم کاملا آشکاره ایشون بگید من استنساخ کردم از نسخه که تاریخ کتابه سال یا 1880 یا 1880 خود تاریخ کتابه مرموم شه خود سال یا 8 یا هست. یعنی نسخه ایشون داره که 7 سال قبل نسیشان این تاریخ کتابه هم خود نسخه بگلداشه نسخه 1770 7 سال قبل از اینکه ایشون استنساخ بکنن و من طبیه کافی عرض کردم این کتاب مرموم مجلسی خیال بزنان سعیده. سریده مرموم آهای شیخ خوش شیخ که کتاب احمد محالده بیتساز این کتاب یک چمه از اون بر در زمان مجلسی قدردی کتابی از مکشه بودن معروضی بکر قرنزان همین کتاب زیر بکر قرنزان هست یعنی از این کتاب واحد سه, شو... سه جوهی اسم برده شده گاهی <عزش> بکر قرنزان برسه شده گاهی کتاب نواده برسه شده. این وجادها نباید با اون طریق عام اشتباه بشه تصادفاً چند ترجمه ها تو عامل حدیث مودل کردن سلسله شفیعی، حتی اسم علی بن جعفر اسم اند نور طریق عام میداره اونجاست که این طریق عام بودن گیره بنابراین هر یه واژه غیر کتاب علی بن جعفر رضی الله عنه پس ایشون یک کتاب علی بن داره که شیخ آورده این همون طریق عامه اون سریه اگر شما بخواهید نقل بکنید انها هم داره فنمی میکنم بگم عبارت رو چون انها در دواره فنمی به کار برده نمیشه. مثلا اگر فرض اصلا در جایی در وسائل یه حدیثی سیوار از شیخ از دفعه از این جرده هست شکری دیگه از داری میگونه شما بسید این طور بگید رب شیخ الهو در وسائل خصهی مصندن علی جعفر جعفن مصن... این موثیر بگین چرا؟ چون صاحب مسائل اسناد داره تا شیخ توسی شیخ توسی هم تا علی ابن این موثیر بگین مسندن همه علی ابن جعفر اما جوی که از کتابش نعرضه بگیم مسندن شیخ این هم نهره چاده بوده باید بگیم روا شیخ رواه شیخ الهر تی کتاب مسائل این کتاب علی ابن جعفن به نهره نجاده این دو رو بایدو هم پرداریدارید همینجا میتونید شما بگید روش شیل صحی ان عبدالله هر جرده به همیری عبدالله هر نفسر اندید میشه ببینید چون طریق ایشان به همیری صحیحه و کتبش در اختیار همیری بودی ایشان به طریق صحیح کرده اما این که خود ایشان مستقله ارز کرده مرحوم صحابه صحابه فقط و سعادتوا، اصلا همین مقدار یه واقعه داشت، خیلی تو کتاب علیم تجبر علی بکلامه. توجیه نمی‌کنه که متکفل توضیح نداره لكن شب ایشان, ایشان مؤثره است. و به اصطلاح آیات اجازه مدرج درجی یعنی این معنا. اجازه مدرج دو نفر به هم اجازه داده، هم مجلسی اشاره کرده درمی‌شه به مجلسی. این اصطلاح در محد اجازه مدرج میاد. دو نفر به هم اجازه داده، و مجلسی نسخه را کامل هر هرچه ما در کتاب علیم جرپر مرموم شیخ و تو مجلسی موجوده لذا مرموم شیخ و هرد توضیحی را به این کتاب نداده این قبوله فقط یه توضیح مختصری داده که من از کتاب علی جرپری که در تحضیب و کافی و استفسار و فقیه اگر میکنم با اون طریق آمه و این غیر از نسخه که من رسیده اون نسخه که که ایشان رسیده ظاهرا همون نسخه مجلسی اون نسخه که الان نشواده در از شیعه‌ای من الان دیدم مقدار اجماعی نکردش تکمیل بیشتر درس ان در دیگر و خاصه با برمی‌کشه طول می‌کشه دیگه بحثه طرف رجالی و فهرستی سرش میشه ما به اندازه که تقی شیوه عرب او علی بن جعفر کتابه اگر آن کتاب اینجا کتاب چاپ مرحوم آیرنبانی در اختیارشون باشه ایشون در بهار و ابوالجد ده فقیه طه این کارای ربانی درسته این کارای ابوالجد این درسته این همون نسخه علی بن جابر ترکیه با درسته این درست پس این تطبیقی که رو ساختار میده قدس واسبه درست نیست و این شو بگه طریق که ایشون میگه طریق سوال و سؤال کتاب رنگ فقیه سحابه این تاریخ از افل تروت که ما داریم این صالحبه هم عرض افل تروهی که ما الان به کتاب علیه نجبر داریم اینه اصلا شکه کومه هستی ای این بін و علیه نجبر نباشه اصلا داره موس عبی با ح�ل و بالتوافی اون چه که ما است سناییم کتاب اون چه که ما داریم ان علیه نجبر انقی موس عبی با قال Fel تا حل سمان سأل تا لا این نسخه ولی این از این نسخه اطافه از اطافه نسخه بله یه احتمال یه میخواب بارده برسه های کلوانی یه احتماله من من که اونم من دادم آنست که سیارا نگیرانستن تشابرشم کرده باشد نجاشی در ترجمه محمد ابن مسلم داره لحوه هربعمت مثاله الحلال و الحرام انعبی جعفر ظاهران محمد ابن مسلم کتابی دار شد محمد سؤال جواب از امام باقیر که چهار تا سوال جواب داره یه نجوشی داره ما شوانه زیادی از این کتاب یک. راجب به حلوی این نجوشی کتاب حلوی داره ما در بعض از کتب ایره امامیه کتابی به نام مسائل حلوی دیدیم اینم در نجوشی نیمونده ما پیشتباه نیمونده برحارو به نشکال نداره مسائل حلوی را هم ما دیدیم همون در روی امامیه احتمالاً مسائل حلبی همون مسائل محمد المسلمه عرضه داشته برماز سالیه یه احتمال داریم که اگر این نسخه باشه موسف رجردتر همون کتاب را عرضه برای برماز سالیه چون حضرت اینم چار سخت آسوست حضرت میم این کتاب هم چار سخت آسوست که من گهشم مثلا ستب برمش که بی ناقصیه یعنی کاملا کامدا ناقصیه شش شیشتا ارواید کردم که همچنین سوالات محمد مسلم هست تو عربی هست همچنین کتاب همیست هم کتاب از این جرفت رو براه هست اینو که میشه از نگفت توضیح شدم میگه جه برای گرمان اشاره و اگر این احتمال درست باشه اگر این نهیم احتمال... احتمالا بعدها خود از این حضرت امام صادق که ساقت برازشون سوال کردن امام همه اون چهار ست ها اجازه نداده همه دویست ها, ها ست ها ست, ها, ست ها, ها که در برورستان آمده حدود ست ها شد مجموعا در برورستان آمده این مقدار رو اجازه برمونده برای بقیه اجازه این همه حالا همه مطلب رو این همه اگر این درست باشه اگر این مطلب ها. احتمال داره که این روایت ناظر در همین حدیث عبیق وسیر بوده که از امام سوال می فرماید تو عن انه غنا هل یسلحت به خطر را از حاول فرم چون میام عبو وسیر نقرده که لا بطه به کسب مهمیه لسی تضفق الهراء است امام فرملم لا بطه به مالم یخسبه یعنی از اون زمان این محضره شده اگر افتیانی توش نباشه گناه توش نباشه ما اگر هم نفردن گناه چیه؟ دقیق کنیم؟ همون داره از که در مسادر مشهور ما نهایه آمده امثال این روایت منشأ شده که بعدها او کنه هل در فقه شیعه یواش جا بیفته که قناعه اعراض هم استثنان نشده اون قناعه اعراضی استثنان شده که توی خانندگی و مطربی نموشه در این مطلب اصطلاح فرست کنیم مثلا سینه به سینه نرده شده روایت هم نبوده سینه دو سینه فرست کنیم مشایخ از مشایخ فرست کنیم از امام حالی امام جهال از این مطرخی در دیر برد این مطلب همون عبارتی بود که ما دیرود از استثاث خب دقت رو این نقطه لتیزیه که اگر دقت رو کنید این در سفر خیلی مؤثره. این خیلی زر همیشه بیاند که به در حدیث بردش باباهای شیعه این مثل دیده که مربون شیخ سوسی در زید حدیث ابو وسیر برده خب خلاف ظاهره ابو وسیر میگه که وزوج و فیادل احبان ار رخ ست فی من لا تسکلم دل عباطی و لا تلقه بالملائی من ال ایدان و اشباحها. ولا لا دلقصب و غیره بل و من منتظف و العروس و به اصطلاح و تتکلم اندها به انشاد شعر و القول من الفحش و عباسی ما الان علماء ما میگن که بینید شعر خودشان توجیه شعرش اینجا اتبروید. الان من به شما چه از کردم احتمال دیم این توجیه شیخ نباشه تلقیه از مشایخ باشه این علم سینویسیه اینه بلا خلاب ظاهر از شاید خلاب مطلب احتمال داره اینا در حقیقت همون لاغنس به مالمی و سله رو توضیح دادن یعنی دفتن مذنونه مذنونه نه میگه عباسی نباشه ایدان نباشه این تزخف این مغنیه مرال از مغنیه که پولی اینجا میگیره تزخف و عراقه یعنی شعر بخونه دیگه آلات موسیقی و لحوه و لحوه و اون کار نا چیش نباشه استثنانی فه اما من اداها اولا ممن یه تغنیه به سایر انگاه الملاهی سلا یه جوز سوام فل فلعرائز هم تیغیره ها این همون شد که شیخ سلسالیت تعجب کرد گفت ما استثناء حرائز در کلماتو ما ندیدیم در شیخ موفید ندیدیم در شیخ سلسالیت دیگر بکنید این نعنیدی منشه شد منشه این بود که روایتی و از امام صادق نرمیترن لا پرسه ریل خنافی زد فلعرائز و از موسیقی جبر نرخواد که مالم یخصده یو این یواشتباه شده ایمه علمای شیعه را افتاد خم قناعی که اصیان نباشه توی عروسه جایزه توی غیر عروسه هم جایزه فهمم؟ ولذا شیعه که باطل نیست لافرق دایم الارائس و غیرها ولذا نتیجهش این شد که استثنای ارائس در کلمات قدم ما نیامد استثنای ارائس اصلا زیف نشد چیزی که او را وارد سری هم نمی‌گوید شیخ در توجیه رواج است. این یه, یه اینطور بگیم نگیم این یک نوع کهبر از شیخ یک نوع برخورد شیخی یک نوع برداششیخیه. یه می‌گویم نه این زواجی که او در درمی متأثری دکارت کرد که تمرین زواج. برای مع بر این مم به اام اهل سنت، اصلا در ل اهل صندن ن للح ن کردن به صابقه غ گفتن. اصلا تشر میکنن که صحب با انند ارز از درد مستحبه نه میجارسی این دایره زدن رو دست ن رو اصلا مستحب در اهل سنت که استثنا کردن قائلله به استحبا بدم اوقی عجیب به ما خوندم و ما خوندم خون تعجی کرد تکات من نهفی یا صحب دم. اصلا دفت زدن رو مستعد می دونن یه قرآنه شما هستن پس این احتمال داره که در کلمات امام صادق نهاره شده خوب فرق بکنی که لا برس وقت در کلمات ام متختری توجیه شده که اینا بس فهمیدن کلام امام صادره لا در جایی که همراه با محرمات نباشه مثلا اون مرزم ایتون لیستر دلتی یک خلالی هروجه ها یک مثلش هم اونجوری بود این یک خلالی هروجه ها یک سبب و حرمته مالم یا سبب عامه تمام سبب و حرمت رو میگیره یک عبارت بقید فرمونید عبارتی شیط توسی شاره روایت خرار دادید به چه معنا؟ به این معنا که معلومه در زمان شیخ طوسی که قرن پنجمه تا زمانه اسدرو که قرن دهمه یا لا اقل در قرن سوم و چهارم توسط عایمه متأخری توجیه شده كلام امام صادق است که مورد امام صادق اینه اینا تک حرف میگن خود ده تا اینا ده تا حرف مطلب رو اصلا منظور دیگه بیمون صادق اینه تو دوستان عزیز نامه نام مشهده باز اگر باشه اما اگر من طلبش شیخ مصطفی بهشان جنده شود دیگه جای نمی جایی چون این راجع به این مطلب که حالا بعد در خلال این طرح ما چون بعد رواد دیگه می‌کنیم ان شاء توضیح میدیم که میشه این مطلب رو قبول کرد این ای مطلب در در نه بابا نه شیعه ها شما میگه ما شیعه ها شیعه ندوریم تو من در عالم یهودی تو در عالم اسلام تو مهرمزان داشت تضایه یهودی میخورد یا ودیلا تازه و حالون و همه یه عضو هستن که ورونون این کوی کو نار هست تو استعاره خب مصداق اون که ماهرنزه استفاده نه هر دومش لازم حالا مردم حالا یه مطلب اینه مطلب یه مطلب دیگه توضیح من چون شما بعد بخویدش رو فاثر کرده، الان فعلا مقدماتش رو می‌گم اون روایت که قینار رو دو قسم کرده اون روایت توش علی نبی حمزه بچا که فرند الگی یک خلاه علیه هر رجال و الگی تود آهل اله لیست بیدی بحثون دو قسم کرده و حتی گفتین مردم خیل و مردم صاحب کفایه استظهار کردن که اصلا قنافی نفسه حرام نیست یه احتمال ما میدیم احتمال که شاید این ربی واقفی ها هم بوده از واقعی واقعی ها بود که مثلا تا 100 سال در فیخشون وجود داشته بعد یواشه هاش حرم شده اصولاً ما در برایات به ناکه خواهد آقا از واقعی کم حدیث داریم یه احتمال ولذا این تایید میکنه احتمال دیگه که من عرض کردم شاید عمی متأخرین ما اینجور گفتن که آوهرا مطلقاً حرامه عروس و غیر چون من قرار از قراره از این نقطه بحث دیگه مفصلتر در بیاییم ما موارد داریم که بعضی درست هستند هر ثانیه هر حال واقعیت، لكن اکثر اعراض کردند مثلا آخه این کارا نشون سر شما ما قبول می‌کنه ولی یه واقعیتی هست که آخه ربو ندارن علی بن ابی حمزه لكن جاییت تو واقعی سالخی هم قبول داره ما این توری که هر چه به علمه ما بعد از, موس... از موسیم نجفر به بعد بعد از موسیم نجفر مراجعه نمی در ذهب زافه ماندر سلام الله علی مجموعی مراجعه نمی کردن لذا احتمال داره که اینها رو روایات خودشون یا فتوا می که مطلقا جناب اشکال نداره شبیه کلام خیلی نیازا اگر فصمان بیزن که اندل عرایت اح... اح... اشکال نداره که فرمونه استثنان و این مؤید همون مطلب اول ما میده که شاید عمیمه متعشقی ما هست و حاضی هست اینا فهمدن نه آفنا مطلقا اشکال داره این مذبی که عمیمه این حکاسش تو فردای شیخ محیبه این حکاسش تو کلام شیخ توسیه تو کلام شیخ مجرد سند رو نگاه نکنید ممکن است سند خیلی معتبره این مطلب یک مطلب دقیقی است یکی از مشکلات فقه است یکی از مشکلات حدیث شیعه است یکی از عوامل ترکش هایی است که در دنیای شیعه پیدا شده خیلی نکته حالا دقت کنیم برای این شواهد رو اقامه کنم ببینید حدیث شماره دو شماره یکی بخونید که برونو کلی گفته بود که علی نبی همزه دارد تو حدیث شماره دو علی نبی نیست از کتاب حسین سریده که همین با بود ان حکم خیاد این عبید بسیر این عبی عبدالله حال الگرمی مقرمی از حدتی حضور فر لا بحث به خسده تو اینو خودید اگر همین نسخه من در اختیارتونه هست نزخه چاپ مرموی ربانی به نگاه میکنید صفحه نوز به حسب باب بسائه باب هیفتر نگاه میکرمه باب هیفتر بعد ماذکره حدیث شماره 3 با... یکی بود دوامو خب حدیث شماره 3 بود 15 و همون, همون حدیثی گفتین صحیح از عبیباتی ایوب بن الهر عبیباسیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام اجل مغنيه التي شیخ توسی هم همین رو عوضه. شیخ تنسی. باز مرحوم شیخ توسی این رو عوضه بکنید شماره حق بابی هیفتر ببینید محمد نور حسن به اطناد یه بزن سریع همون رو باید, باید هم نظر اینجا داره عمل حلابی اون یحیل حلابیه مرحوم ان ایوب ابن الهرم ان عبیباسی قابل ابو الله علیه السلام لا بأس به عجر نائهه اللذی تنوها علی المیت خلصه شد لا بأس به عجر نائهه اللذی تنوها علی صاحب ساید فقی مندای احضور ایفون از ایوب ابن به ایوب ابن همین سنده اینه حسین سلیم نزدن سوری اندال به اصنادی حالا حسین سلیم به اصنادی از ایوب ابن مثل مثله همون مثله به این محنا درکت بکنیم در کتاب شیخ صدوقی لا بحث به عجر نائه اللتی تنوها علمیه و اجر المقدمه التي تذخرها راسه الكبير بعضهم <سست> خیلی بوده در که روایتی که عیونه هر ها کتابش بوده یا کتاب دیگری بوده در روایتی که عیونه هر از ایزتی نحتن دو تا یکی نائحه هست یکی به المقدمه النتی تذخر حراره است درسته دو تا آمده و کلینی اولیشو حذف کرده مرحوم کلیوی اون لابعث به عجر نارهه حالتی تنوحه علمه میتشن هستید حالا حسین مسعی چی فرمیده ما نمیدونیم اونو واقعا متحیدیم حالا بالاتر از این در همین کتاب حسین مسعی حدیث شماره 8 اون با این از کتاب حسین مسعی این عثمان ابن ایسا که ایشون هم واضحیه. هم سماعت مهران که میگن واقفیه به نظر اما ایشون واقفی نیست صدور و شیفتوسی گفتن واقفیه ظاهر عبارت نجاشتینی که ایشون واقفی نیست و هنیان صحیحشون واقفی نیست لیکن ظاهراً واقفیه در مسادرشون زیاد عاظت سماعت آورده اکتماعاً اشتحالش به واقفیه به خاطر عبادت روایاتیش در کتابشون باشه ایشون واقفی نیست قال که تو خوب دقش بکنی؟ ام کسب المغنیه من نائهه فچره هاو خیلی در این چی بگه فچره هاو این هم مغنیه مطلقه هم روشن چی سن؟ یک روایت واقعیه نقره کردن که لا برز به کسب المغنیه چره و ابو عبد الله که را حد داره عبدالعطان چرا حضرت به کسب المغنیه به من را تحریم بای که مرد نیتیدی حالا برای شما روشن شد کتاب اوزین چی کار شده تو کتاب اوزین سریع بوده به صحبی از واقفیه لابعث به کسب مغنیه و نائب این سیچه رو هم صدوق حرص کرده هم کلیه هر دو باز در همین کتاب اوزین سریع بوده از عبیبتیر لا بأس به عجر الناعه علمتی سنوها علمیه و اجر المغنیه علمتی سزوه خلقه ارائس این حدیث رو کلیم صدقش رو کرد. کرده با اینجا از حسین خیلی نرده خیلی عجیب ها نوح هم داره هم نه بلده. این بابه هیزه بابه نوهاده. بابه جواب کرده به ناهه. بابه هیزه کنگه. تو بابه لیقدر میداره چیه مطلب؟ این بید که از مشکلات حدیثشی از داره چیکار میشه؟ چرا مرمون شیخ سوسی مجبور شد احادیث متعارض رو بیاره و جواب داده؟ خب از کردیم به خاطر دولت حکومت شیعه یا بوبه خب فایروز زمان ما الان در زمان ما اینقدی وهابی‌ها به منابع رو مراجعه کرده که چیزی نمون دیگه رفت اون یه گوشه یه زمانی اصلا اطلاعی نداشتن کتابا الان میگه مرجع مراجعه می‌کنن تمام حرفا رو می‌بینن با طرح شیعه در بغداد همین حالت پیش اومد خب این سوال بود که شما شما حرفاتون متناقضه اگر کتاب حسین‌تقی معتبره خب همهش معتبره اگر معتبره می‌ذارید نیست دقیقا این چرا این کار کرده؟ من چند بارم دیروز یا پرز رو از گردم کلینی و صدوق گذار اختیارشون اختیار به اختلاف اختیاریست، گذینشیست اما شیخ توسی گذینشی نیست اصلا شما نگاه که یه حدیث از مال در لا لابعث و فکره اجرال مغنیه و نائه حالا فکره اطاقی شد در نائه مخروحه در مغنیه حرامه دقیقا مثلا یکیه محصول همون سیدیسایی خود نگه چیز سوسی در وقت پسجیب بزنید اون وقت از اون برباد کرده لا به و عجر مغنیه الکی تذفل اعراس لیسه بری پس یکی لا بقت کره او. یکی تذفل اعراس این لیسه بری خولری در اینجا که آمده با صد شهس کرده این که من هم این خولری این اصطلاحی که از کلم یا اختیار می‌کنه خیارات داره مراد من این روشن شد یک اون حدیث تماره که کلا نگفت دو اون حدیث به اصطلاح ابی درسی رحم که آورده صدرش رو حذف کرده ما هم یکیه، شما هم یکیه. چون کلیه داره ادله من اصحاب من احمد بود این فایده. شهره توسه بیاره، حجت همین دفتره که واسه این فایده. بس در یکیه، سند یکیه. تعامل بروندید. چون نارغونه کلینی اون رو قبول نداشه هست شده. اگر یاد آ باشه من وقتی هم اشاره ای کردم از این مقالالب نوشته نشده و گفته نشده اواصول این دست ها تو کلمات از خواب امده برای ما که با اون برد زمانی قرار شبیه بازی مقاش به باشه اددی گفت باشه. من خود من احتمال میدم که کار رو که کلی کرده اصلش مال ایشان نباشه دقیان حتش مال احمد باشه احمد گزارشی برخور کرده اولین این و مرمون سرون هم مطابقت احمد نکرده کلگی مطابقتی شد به هر حال فعلت در اینجا خود دقت بکنیم پس ما معنون شد که یک مشکلی داشتیم و اون مشکل این بود که ما روایت داشتیم که کره ابو عبدالله عجر نائهه و عجر مغرمیه یا کره حرمت باید هر دو حرام باشه یا کره چراحت باید هر دو مطلوب باشه از ما گفتن در نائه مطلوعه در مغمی حرامه سوالینه اینه این رو میشه بگیم دقیقی رسیم که انگیمه مترخیلی پرموده باشن راه درشت هیده بکنیم بفت کرد شیخ توسیه هم مجبور بود چرا بردا بردار بود مگوزن هم گشن زودتی برمونه برمونه این رو همه چی میگیم راجوی چی میگیم راجوی زودتی چی میگیم زودتی شرمه حالا اگر ما جای شیخ سوسی بودیم گفتیم آقا این وبایت بوده که واقفیه کردن، اینه متأخر ما از این ایراد کردن بخیر درست نرکردن بخیر در چون تو اون حدیث حسین سریف اما عثمان ابن ایسا که واقفیست اما سماقه که منظور به وقته پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که معلوم میشه راجع به مسئله مغمیه واقفیه مشکلی داشتن و چون واقعی در این متأخر ما مراجعه نمی کردن به امام رضا به امام حادی به امام جفت و احتمالا این که اصحاب ما حتی ارائه هم استثناش قبول نگردن هم. چه برای تو مطلقه که شیخ دوتی بوده و ظاهر شیخ محبیده و ظاهر فتا وای اصحاب ظاهرش اینطوره. که این مگردامار یه بوده البته ظاهر کلی کارشون قبول داشته احتمالا اما چون کد این مختلف بوده پیرا نمی‌تونیم بییشان هم نسبت بدیم دقت کنید شما هم ار میگم یواشواش مدرم حالا این شواهدو حالا بعد این حالا این مقصد چی بوده اگر چون عرض کردم ان بعد مثلا بر... اشاره اجمالی می‌کنم بعد از تمهید منظر رو بحث دیگه عرض کردم یه مطلبی بوده بین اصحاب ما در خود کوفه که ما روایات رو با شواهد کتاب و سنت قبول بکنیم وقت در اینجا مجموعی ما به سنت درگردیم اینشان ها از این خودیمی که از روایه دیدن کتاب و سنت هم شده. نسبتاً هم مشهوره نه رسول الله انسوتین فاجرین ناهه و محرمیته پس معلوم میشه اصل مطلب بو اونجا برگشته. بحث سر این بوده که این نهی رسول الله نهی کراهت یا نهی تعریم و بحث سر این بوده که حالا که ها رسول الله (ص) این اجرت بر ثوب احتمالا واقعیه فکر میکردن حدیث سماه با قواعد بهتر می سازه از این که استثناء شده معلوم میشه که اصولاً تی نفسه جایزه دینا مطروحه ببینید دکت بکنید ما بین زمان صدور روایات تا زمان شهر مفید مثلا دیوی سال فاتلت در این اصنا رعی واقعیه بوده این رعی بین شیعی امامیه هر میشه. به ما در برنی 11 و در آزده فیض کاشانی و سابده خیلی رعی تجیبیدن چه <تص> صوت غنافی نفسه مکروه با مقارنه اعمال محرمه حرامیش به قد تاریخی را دو برشد <تص> شد <تص> اینی که مرحومه فیض کاشانی یا مرحومه چون این نهر تحریم تاریخی هیچه هایی رو شکل میکنیم اینی که اینها در برنی ده این در حیمت این ما بین زمان امام صادق تا اخص مذهب شیخ مفید این فاصله زمانی واقعیه فائله این بوده و لذا هم کره ابو عبد الله اجر واقعیه و اجر ناهغه از شراحت هر فهمیدن ادله خود است نیست الذی یقول علیها رجالات یعنی مخاطب بگم غنافی نفسه شراحت داره اگر مقرون به محرمات شد هرانه اما معلوم شد که این رجعه این ما تره شد من دروده اصلا کمتا 60-70 سالوهای در وسائل امروز داریم که جامعان حاضیت من اما از این به نبوده ایشون که حساب کرده است در مجموعه عبابش حسابایی که داریشون از سخراه داره در کتاب جمهور احالیتون از مقلم این ها مورده مجموعه ای که در جمهور احالیت از احالیتون در این سه چهار باق نه در یک باق مجموعه سات چهارده پس معلوم شد که ما باید دنبال این مطلب بگردیم هم اصلش و هم استثناءش یک سابقه در فقه واقفیه داشته بلکه شواهر مشیره به اینه که استثناءش سابقه در فقه اسماییلی هم داشته. اینشان الله فرزه شواهدشو اقام میکنه. و این خیلی مفروض شده بین اطلاع بعد از ده نفر توسط فیز کاشانی مرحوم سالزهی دو مرحوم احیان شده بعد از ده نفر این که حاضر شده دو مرحوم احیان شده الله شده برداره صلی اللہ محمد